و الحمد لله ای رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا الصجائمه على اعدار اجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اعشكی شماره 4 که در وسائل خوندیم حدیثی بود که دسته امیر صلوات الله السلام علیه و خروج نشان برای جنگ نهروان حضرت متعبس شده بودن و به این مناسبت چند تا متن حدیث رو از چند مصدر خوندیم یا این مقابله بین مطوم شد چه در مسادر اهل سنت این حدیث آمده بود در کتاب امالی صدوق آمده بود در کتاب نحج الولاغه که احتمال بیدادیم شده به نقل صدوق نده یعنی احتمالان همین یکی از این دو کتاب باشه کتاب که در صدوق بوده یا جمع کرده بین مجموعه نقود محض رو که به علمان امام نقل کرده بیشتر به متن صدوق می‌خوره به متن صدوق اشوه ما به این مناسبت ها درد کردم بنابرای ما این نیست که الان کل روایه هستون و این ترتیب بابایی زرافتی کنیدیشون واقعا با بحث فیلی ما نمیخوره اما میخواستم یه نمونه خدمتون ارز بکنم که انسان وقتی روایت رو جمع میکنه چیجور میتونه استنتاج نهایی انجام بده، و چطور شده که یک خبر واحد به این صورت شدید مثلا کم داره. بره و طبعا راجع به این روایت هم چون نسخش مختلف شده اصرفرسون شهید طاووس بیخ نشون ده که اثر کرده علماهای دیگه مرحوم پرفسون سازشوار یاکوم تعلق علم و نجوم یه قسمتی میشه اثر کرده علم نجوم کلکا... کل کاه که صاحب است یعنی که علم و کاه کل... این لدی نقل نشه ولی این ارسال صاحب سال بشه اثر کرده و مشهور شده لسان ها این در آن تو زبان‌های خیلی مشهوره در که فرد این مطلبی که خدمتتون عرض کردیم این زیلش در برخی از متون آمده توی مطر اهل سنت هم بودی. توی مطر هم بودی. توی مطر اهل اقا آمده. مثلا یک ذهی من صدقه که با هادا توی مطر اما آمده که این کلام امیرالمومنینه. مرونینه باید در مطر اهل سنت همه که نقل و هم رسولا قال سمع تا رسول الله یعنی بود. خوندید مفصل مطر رو با هم مقابله کردید و مسادر رو و توضیحاتی گذشد. من یه مقدار دیگه البته باز هم متون این حدیث رو خدمتون اعرض بکنم و مسادر این حدیث رو و البته بازم احساس من اینه که هنوز در برگردیم تو مسادر اهل سندن مثلاً, مثلا مسادر مخروطش هنوز این حدیث جا داره یعنی هنوزم با سند و با مرسنهای دیگری این حدیث موجوده حتی شاید در متون زیدیه هم موجود باشه اینه ای که همان نقوم میکنن از همین دو سکت ها بگیرد در دستات من بوده یکی از مسلم در این کتاب نجوم در کتاب بهار همون جلد پنجه ها کردن اون چاپی که کردن باب علم نجوم و عمل برد بی بی بی در اون باب شماره دو این رو از احتجاج نهاره کرده من سعید ابن این باز از اون مسلم از با فرق کرد اسم سعید بن جوبیر هم در مطول خبری نداشتیم که این کلمه ابن عباس داشتیم بله ما سعید بن جوبیر از ابن عباس نرمی کنه قال و امیر, الم... امیر... امیر المؤمنین سلام الله علیه دهبانو احتمال این که سید ابن هم هست امیر در کرده باشه تفعاً منتقیه اصلا حضور پنی سال بعد از شهادت امیر المؤمنین تولدشه بله در سمین جوانی عبد عباس رو در کرده راست اینا یکی از کسانی کسان که زیاد ازش نعمل میکنه میکنه کلاام روز نزدیک 50 سال از 30 سال داشت که حجاج حدیث برو به اون صورت صحیح است ان سعید هم تمایلاتش بیشتر زیدی باشه این که در کتابهای محمد وردین معلوم اسم اسماء اشعری ها باشه ان سعید بن جبیر قال سقد على ابي البته احتمالا یک چیزی افساده سعید بن جبیر مثلا یا عنه ابن عباس ابن عباس در مسئله رحلی سنتی در مسئله ما هم نیست الانه الان در کتب شیعه که ما داریم احتجاب و همون قاضی عامه که ایشون گفته من هرچی نرموکم اجماعیه یعنی رواستی که کاملا درسته اینجا داره دهگان مندهاغین الفوس دهگان که در فالسیشه اون تقریبا مثل عرباب به اصطلاح اون کسی که مثل عرباب مثل به اصطلاح کسی که داره املاق و زمین هایی است. و این داره که دهغان بوده در بعضی از عبارت خوندیم منجم بعضی های مثلشون خوندیم که نه ناوفردل احمر بوده که به تعبیر مرحومه به صدا من اصحابی بوده فقالهو بعد تهنه یا امیر المؤمنی تناحست نجوم و طالعات و تناحست به نهوس و علاقان نفل و و جبه علی الحکیم علی اختفاق و یوم که حاضا سعد از انقده فیه کوکب انقده فیه کوکبان و انقده من برج که نیران ولی لئی سل هر بوله که به مکان این که گزمانه جزمین چبیه کلماتی کهنه هم این طور به اقافی صحبت این صحبت با سجم اقافیت تو شد ولی لئی سل هر بول به مکان خب من همدن خوندم با اون نقل های دیگه کاملا این فرم میکنه. بعد حضرت هموندن مثل ایشان شروع کردن سجاقافیه وی حقیات اهران المنبع و بالآثار المحذر و من الاغدار ما قصدت صاحب المیزاد و قصدت صاحب سرکر و در این نقض من عمضا نمی کنم همینجه چون خیلی طولانیه با در اینجا یه چیزی داره که در کیش از اون مطمئن نبود اون چیه؟ اون این از که امام امیرالمومنین خودشون یک مقدار از مسائل نجوم رو میپرسن می از این من صابعا گفتم در برزویات امام صادق و امام رضا بود مثلا زهره با خورشید چند درجه از با این میگو من نشینم یا اون به اصلاف مثلا اسم برجی رو بردن نه سن بوده. اون اسم دیگری بود با بو اصلا من که برج رو اسمش نشتم که کوکر کوکبی رو اما یستنگو باز در کتب بعضی از کتب نجومی مطلب هست در بقیه کتب نیست بعضیشون شروع میکنه این ما اذه از روایات داریم که به ذهن ما میاد بسیار قوی تیم در قرهای سوم و چهارم جعل شده باشه سعی کردن یک همون اصطلاحات نجومی رو به نسبت بدن یک دو همون استنتاجات نجومی رو نسبت دادن دو سه یک اصطلاحات خاصی هم نصف زنید در کتاب نجوم نیامده همین جا خود من رو زین زیدین حدیث ملازم فرمه ایشون, ایشون میگه ما نمیفهمیم بعد میگه بله میگه کذا او اصطلاحان فی الکواکب لا یعرف و ها المنجمون پس یه اصطلاحات ایست که ما الان در این ندیدیم حالا این البته آه این خیلی دقت میکنیم بعضی از رو تفسیر اینجور میکنه که شو از این کسی که اینو درست کرده بعضی از اصطلاحات نجوم هندی پیشش موده که این بردا ترجمه نشده بی ما بردا چنین رو برمیمون نستاده این احتمال هست احتمال هست که واقعه با جماعه انصافن خیلی روی حد علم خودمون خیلی مانورده حد دول واقع همیشه اوسره و واقعیت از کدش محکومه رفته وادل خیلی نداره نسبت این رفتش وادل ام خیلی ضعیفه ادله واقع خیلی سالش فراموش وادل ام شاید ام واقعاً سال از تمیم میشه واقع نمی‌فهمم که چیه و از تمیم می‌خوام بگم در اندونزیوم خیلی از این اصلاحاتش شما مکانیت دیگری هم هست که شما آن می‌فهمی این احتمالش هست اما به این مقداری که الان در این کتاب آمده اصلاح نمی‌شکند یک اصطلاح اهل به اندونزیوم دو استعمال اصطلاحاتی که متعارف نیست حالا میگفت که هر کسی از زن خودش شد یارمه یکیسی کسی میگه چون متعارف نیست بسی این از معذر نموضتی این از ذهی علاوی است یکیسی یکی میگه در این متعارف نیست این مال بعضی افکار هندیست که ما اصلا ترجمه نشد باسی و عربی ترجمه نشد ولی از اینا با این اصطلاحات آشنا نبودن به هر حال چون بباید علا کله حال و اعتماد به امام بر او خیلی نشته فعلا چیزی نمیگه این دو سه درست امام مثل همون هم استخراج شدن این هم خیلی عجیبه چون الان من نهرس کردم چه ما علم به اصطلاح حیعت که الان داریم یا نجوم به اصطلاح دیگه الان تو این علم استخراجات نیست یعنی تو این علم نیست که مثلا الان ما پس کن فلان غصت خانه کن با سیلسکو با حابل کردن فلان ستاره نزدیک بود فلانی این بود تست فلانی در ساعت فلان بچه دیگه شاهد این بچه در پنسالیگی خواهد بود هیچی از الان در دنیای این این پیشوی های نمی کنه دیگه استخراج کسی همچین استخراجی همون هم نمی کنه باز از این استخراج هست همون هند و چین و ماچین و بعد این تقریم ها و علم های احضار ارواح ها از جنه از این کارا و املا این در دنیای علم نیست بعضی از روایات ما داره که این استخراج هم کنش آمله خوده قسم بکنه از اینکه اصطلاحات عجل داری به کار مرده یکیش هم همین مثله بعد مثلا ببینید و کم المطال من الاسد و ساعات من ما و کم بین سراری و دراری که اینگه سراری و دراری ما الان در اصطلاح نجوم نداریم سراری و دراری. چیه؟ چرا امام فرمودن بعد اون یارو مناجبه گفت سعه ور گفت نگاه میکنم و امهکم نگا میکنم در آستینش بود و امه بیته الاکم میه در و اخرجبن او استرلا بر علیه و که این هم در مصیر از استرلا الله یم وروفی كتبت سنه از از این هر وا معلوم نمیشه با این صلی الله و صلی در فقال از ما حد اصل باره غیر از اون مقلب یک امام استخراج هم فرمودن یعنی ظاهرش اینه که استخراج با علم نجومه میدونید این چی شد وقعه بهتون به سین ونفرج برج و ماجین و سقط سور و سرندی و هزم بفریق و روم به ارمینیه و فقد دیان و یهود خیلی حلوانه که در یک شب حمادث عجیب غریبه ای حالا با قول خود مرحوم همه خود مثل حدیث موسیقی سقیمه ما همینجوری برداشتی نقل کردیم الان ما به که حالا این اصلا چی حالا و حاج نمد به واد نم و حلک ملک و اطلیقی اکنت آلمان با الان فقال الله هم برمون فقال الباره سعد سبعون الف آلم فی کل آلم سبعون الف و لیله یموتو مثل، شروع که ظاهرش که شروع ترمه استخراجات بسیار عجیبه که از علم نجوم فرموندن که در همون شد تمام این حوادث مثلا انجام شده این مطالبی که الان در اینجا هست کل این مطالب تو نقلای دیروز ما نده بود یاکین باشید این مقابله که کل این حوادث عجیب و غریب و استخراجات و اصطلاحات در نقلای که مخصوصی دیروز نقلای تذکرات و خواست خوندیم خیلی بود اصلا اینا کلا در ترکت خواستین ها نبوید این اصطلاحات دیگه من تا آخر نبخونم خدا آیان به اصطلاح بررسی بکنم فقط این داره که امام در آخرش رزنده چون جوری دیگه هست فقال علیه السلام امر و صاحبی لا شرقیون ولا غربی نهن و ناشعت القط و اعلام فول کلا احتمال یا فلک امام من و صاحب من ظاهرن موردشون از صاحب رسول الله باشه یعنی ما که از بیتنوب و وزق الهیت هستیم لا شرقیان ولا غربیان نه از شرقیان و نه از غرب قلونها نه نه ما مرکز قطب داره وجودی ما و لذا احتمال داره که این هم استخراج نباشه حتی بکنیم شاید امام می من اینایی تو گفتم علمیش گفت گفتم اما اینه از رای نجوم نیست اینا از باب اینکه که ما قطع دائره وجودی ما اطلاع شبیه علم حضوری رو اینها داریم نه علم حضوری و علامل پرک ما آس... نشانه های خود این دوران فلک هستیم این را حالا انشاءالله شاید در خلال بحثا یک راجع به شرح این مطلب عرض بکنم که توضیحی باشی انشاءالله در محل خودش بله. بله دو تا سنه نمی‌دونم نمی‌دونم شباهت نداره که ما می‌گیم من حساب نمی‌کنم بله حالا حالا اجازه بدید مثلا در زیله حدیثی که دیروز از عملیات صد... از خوندیم فقال له ایشون نوشته مجلسی روبی ان هذا القائل كان عاصم بن قيس اخا اشعث بن قيس این هم داری این هم احتمال سبون اصلا اون کسی که با حضرت صحبت کرد حفیشت نقیصه اش اصلا نقیص که واقعا که از اون شخصیت های واقعا جنجالی و واقعا به معنی کلمه شبیست که در هر صف باطل هر جا علم باطلی باشه این می اون علم باطل قرار میگیشه که کارهاشو شو جنایاتش به جای خودش مختیزه حالا از جمله روایات این هم یک اینکه بله در کتاب فرج المأمون در کتاب مجلسی به شماره 13 در فرج المأمون حدیثی رو نقل میکنه دقت میکنید خیلی طولانیه حدیثی رو نقل میکنه این حدیث رو که در این صفحه الان ارشم 229 بیست رو بینوا به بی اسناد الهی شیخ الهی شیخ سعید محمد بن رسمه بن جریر طبری علی امامی بیشتر از این ما ابن جریب معروف به سومی سال تاریخ تبری. یه ابن جریب امامی هم داریم صاحبی کتاب اه... چیه؟ دلالو امامه سال امام. کتاب دلالو امامه ابن جریب داریم البته این یک نکته است که اینجا داریم کتاب امامی محاصر ما هم اکتاب خانه سیرم تابوس این صاحبت اشکال کرده این اشکال ما هم کردیم این ایشون یک ای کمی لغت دیگری اشکال کرده و واقعا هم وارده یعنی واقعا یک نقطه هست که گاهی اوغاست گاه خب یا هم بر اشتباه نساخ اینا میکنیم ولی واقعا چیزای مرمون سید تابوس میکنه که انسان واقعا تحییر میاره مثلا ایشون اسم ابن جید و محمد ابن رستم یا برده یا محمد ابن رستم ابن جریب ایشون همینجور گفته از شیخ سعیل محمد ابن ر فهم در نتیجه محمدی اسم ایشون دو سه بار اسم رو برده یا محمد بن محمده یا محمد نرستن محمد بن جری اومد واقعا مثل عمر سر که گفتن علی حسین بعضی کارهای خیلی تابو حالا چی بگیم توجیهش چیه تساهلی بوده نسخه ایشو غلط خون بودیشین ترجمه نکردن کسی که چم بزرگی این همه نسخه عفیصه چطور این اسم برای اشتباه شده واقعاً منم توجیه نگذاهم یعنی واقعاً نمیفهمم چی بگم. ایلا شیخ سعید محمد ابن رضامه مجاهدی همی تو هست. انصافاً در کتاب همی تو و از که در یک جریم محمد ابن رضامه تبری آمده، یک جریم محمد ابن رضامه و غلطه مگه اون کی نصب جریش باشه بیا لال. محمد ابن جعیب ابن رضامه در هاشیش هم دلیوشان. ای مهاشیم دلیومش فکر کردیش حال وارد وارد اندروشیه از آذان هست مثل جیب هست. انر حسین ابن عبدالله الجرمی ان محمد و محمد ابن حارون تل اکبری احتوال بیدن ان باید باشه چون باید این از ابن از محمد ابن ها محمد ابن هارون، راست حواسان پرس این از محمد نرقی محمد پسر حارون حواسان پرسان را شده ایشان درس نجاشی بوده چون نجاشی میرا که پیش خونه هارون موسی تسلش هم اونجا بوده ایشون توصیف رسمی نداره مگر همین عبارت نجاشی محمد تسل حاجا از چیه اسلام نسل ولد رحمان محمد بن احمد بن القاسم يا ابن عبد الرحمن ان اكيد چنطوری که نمی‌شناسید احتمال داره استیاب مشه شب مرحوم هارون موسی صله افغانی از خصائصش اینه که هیچو از ابی نداره پسر هم میشنسیم چون پسره که بجا کرده اما علی ابن صالح ابن حی رو نه این زیدی هاست این علی ابن صالح نه حی از سوری فو... سوری شاخه از همدان، از همدانی های یمنی در جزو علمای بسیار بزرگ خودش رو برداشت حسن حسن ابن صالح و علی صالح. از علمای بسیار بزرگ زیدی است که به اصطلاح امروز ما جزوی اپوزیسیونی و مخالفین منصور علیه الان تو ذهن من میسه من حسن بعد در زندگی مخیاره زندگی میکنه چون سلطه به دنبالش بود دیگه مجبور مخیارن در مخیارن خود که انشاد حسن علی ابن صالح ان زیاد ابن من منزل که از, از زیدی ها از اعیمه زیدی است یعنی اعیمه به این معنا مکتبی صاحب مکتب از جارودی میشه اول جارود الان هم زیدیای یمن جارودی هستند که الان باشه ان قیس این قیس بن سعد بزرگان اصحابه باشه که فکر نمی با آبی جارو رو درک کرده باشه. من یاد سر در کرده این پسندن سر از بزرگان اصحاب و مالنی. و این کسی بود با این که از امام مشتبه بیاد کنم با ماهی حاضر هم بیاد کنم. چون ما گفتم تصور که با ماهی رو بروند و بین نمایش آمیشی باشه. برای دوی یک چند کشمشی رو نیز آوردم. بین اونها بیاد که حاضر شد. این هم هر باید که امام می‌کندم گفتم من بیاد بر جهی پسندن صلح با ماهی. قال كنت و این, خیلیم شجاع بود. خیلیم این قیصه مثلا خیلی کجاست خیلی فوق العاده است خیلی فوق العاده است خیلی قد بلند دیداش خیلی میگم پاش به زمین می‌ریست می‌نشسته بودشش بشرح مفصل داریم جاشین ببینید نیست، شاء الله فرصت دیگری قال كنت كثيرا اباب الان تو سه هم نیست که ابو الجواد از اون عرق کرده باشه در حد اون نیست كنت كثيرا اسای را امیر المؤمنین دار سار علاوه چون علاوه فقط از خواق تر سالمی هم فوق العاده شجاع شخصیت رئیس اشیره خلا ما قصد احلا نهروان تمام قضایی ها برمیده به همین جگه این در تمام نسخ تقریبا و سرنا به مدائن مدائن هود 22 کلومتری بغداده همون تیسون قدیم ارز در بغداد رو که منصور دوانگی ساخت تشریف دادن بهتر اینکه که به جای مدائن که پای ایران بود و ماره ساسانی ها بود شمالش رو 20 کیلومتری بغداده ساختن که الان هم سلمان پاک و کنتو تو یوم عینن مصاهرندهو این یک شرح دقیقطی بوده از قیس سر سعد اب خرج اله قوم من اهل المدائن من دههاوینه مدائنشون پایتخت بود هنوز شو شیعاها ایرانی های قدیم و, و به اصا خاندان ایرانی دههاوی و خاجگان به اصطلاح حاجی و ثروتمندا به اصطلاح ما میگن فرمانیلان هاشون سرمدان هم دین دههاو میذن معهم برازی سوار بلزم بودن که با خاطر. بله ها این برازین و قاطرها را هدیه برای احمد تیمی روزن چون ازشون مثلا رو با اذن تشوی می هدیه ها ازل قبول فرمیدن و کان من من دهقین بالا من احتمال دارم به لغت فارسی سرسفید باشه با داند. یعنی موی سرسفید معنی احتمال در حد احتمال سرسفید باشه و کار از تحکم و برعیهی فیما مذا. یعنی ایرانی ها از او اخبار گودشتان روستان و استادیان و پادشان و قدیم و احیث رو آلمی کردن گودشتان رو و ترجعه اله قولیه فیما سلف چه کار بکنن این یک شرح بیشتری داده پس اون دهوان اسمش هم سرسفیده یه شرح داده شرح اخبار اون دهان رو مشخصا واضح کرده که اسمش سرسفید بوده فعلا ما بس, بس رو به امی قال نهو یا هم میرونم ده تجه همان آله وله ما زاد یاد اهوان آل نجوم و توالیم این تعاویل بگه مثل همونه این این مقابلی که و بله. لذم الحکی الحکیمه مثل هادالیوم و لازم حکیمه بکنی به نهست محبول است. هست الاستخبا و جلوس استخبا پنهان شده و این یومکه حضا یومون مومی قدستر نفی کلکبان قطالان و شرف فی بحران فی برج نیزان و سهل من برج کنیران این همون عباراته اما با یک اصطلاحات دیگری به نظر من احتمال میدم بعضی از یکیستانی که با اصطلاحات نیجونی در غنی دونس و ایرانی بودن این دستان جر کرده باشند. فتبستن سر امیر المؤمن همینطوره بعد داره از سخ... سخ من کمیهی از و سخرج منکومیهی از و خودش اسفرلابن و تقریبن تقریبن در اصطلاع زیجه در یه زیج که احکام نجوم نرشته بود قال لهو امتا مسیر الجاریات قاله دار قاله اصطاقه دار اصطاقه دار قاله اصطاقه دار اصطاقه همین حرفایی که اصطاقه به اصطاقه من بله سهلی ارنطیاب دهوان ان الملك اليوم انتقل من بیت الى بيت السيد بن غالب من برجماجي هم صحبتی که در اونجا دیگه خیلی طولانیه دیگه من میخوام بخونم که چون نمیخوام بحث باز در اینجا جل یاد دهوان انا مختار که انی و, و صحبیه ها الا لا شرقیو اونجا داشتم با صحبی برای اون شیخ مرجیه بیرو صحابی رسول الله دا. اینجا داره بحث یعنی یه چیزی با مناظره لا شرقیوط و لا بعد بعدید بعد در ویجونمثل میید و ازذا درست لوعل اطلاعات عل که اندکه تو سی قو در قر حتی این ن های نظ رو حساب میکن این تو روات ما صادق ساده برسم باشه یا تو تو را بهقدیم طبیع نبود که میون اینقدر حفته که اگر انسان اون علم درست یاد بگیره حتی سب سبزی این سبزیزم اینجا تشرید شدهیم. شکل می کلی شبیه اها احکام هر چیزی رو تشریح بده این تو یاد اینو تو مثلا اینجا تو اون متن قبلیه تو این متن آمده باز گویا کرده اون مسئله عجیبه تو این متن آمده و ما با امیرو المؤمنین فخذ من اهل النهروان و قتلهم و آد در مثل در اون ما که قبلی کنا خوردیم که به آد گفت شد واقعیه یعنی بشید در اونجا نبود اما تو روایت سابقه ما بود فقال الدهقان ليس هذا العلم بما في اهل زماننا هذا علمهم علم, ما. علم مادهه من السماء هذا علم برضو ما که ده سید رحمان الله از اسفقه نبات این دیگه خیلی کولادیه از صفحه 110 این دیگه از او طولانی تره بعد امام خلیل این دیگر از همش طولانی تره. اون در آخرش داره که اون دیگر با مدت که فرمان اشرف الله الله الله الله واحد هولاء وعده محمدان ابده و رسول دو و امکان و ولیسیو مفصلات و توائه اینم چیز زیادی آخرش در اینجا داره. درک میکنی؟ این دفتر این دیگه متن از همه طولانی تره. این متن این حدیث که به اصنادی اص... خبر از خبر نباته علامه تا اینجا اسمی این دهگاه نشه سرسفیل سوار شاید سرسفیل باشی باز سرسفیل سوار شاید مثلا من نمیدارد چی بود اسم به هر حال طولانی ترین با فش استخبارات و خبر دادن و مطالب دیگه تو این متن آخره ظاهرت من نشد نگاه میکنم ظاهرا مرحوم سیمت و خیلی از کتاب های که اسم میبره از یک کتابی به نام چی؟ نفر او او, او. یه رساله ایست که اصلا اصلا تا نیست این خبر رو از اونجا نعرف کرده این از همه مطلب کرده این متنی که الان امروز روز بله ببینید مرحوم مجلسی هم که خونده ایشون میفهم اکثر و سآلات الملکوره فرقه بایه. علا تبیری صحت ها و ضبط ها مبنییتون علا اصطلاحات معرفت ها مختصتون بهن اصلا ما نمیفهمیم تو این علم نمیدونی آخرش هم نوشته عقول و کار فل خبر این چی ما هم دونن مس کثیفاتون تثیره حتی عکسش نمیفهمم رزخم ترابی داره غیر ها کبا وجدنا این هم این هم به, نصفه به یک متن بله نجوم مفصلی است که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده و واقعا هم برای ما خیلی به اصطلاح محل اشکاله که این جور مطالبی رو مرحوم سید تابوس از کدام مصادر و چطوری مثلا نقل فرمود این هم راجبی عرض کردم که آخرین مطلبی که در اینجا هست موضوعات شرهای دیگه‌ای هست که بر توضیح هست حالا نتیجه نهایی در جمع این روایت قبل از اینکه به روایت بعدی مسائل برسیم اگر ما باشیم و به اصرار معروف همین طریق معروف در اسانید و مساله ما از حدود 5 تا 6 تا طریق و مسند و سند خونده تو هیچ کدوم از اینها تایید نیست یعنی بلااظه سندی اگر واقعا بررسی بکنیم یک دانه سر از صحیح در اینها نیست اگر به لحاظ تلقی و شواهد خارجی و مثلا شهرت مستری حساب بکنیم از همهش مشغول تر همون که نحج بلاقه هست بخاطر شهرت نحج از همه اینها مشغول و همونی که در نحج بلاقه هست اجمالا مسنده از اون سردم ضعیفه در کتاب امالی صدوقه که به نحوه واضح برمیگرده به کتاب به اصطلاح از درس نص نسخه مزاحم نسخه ابو سمهینه کوفی بوده که توضیح دادیم که به حساب ضعیفه این تنها حدیثی که نسبتا روشن تایی داره همین است نفس اینکه نام قابل که بعدن مورد قبول اعصاب شده این خوب جامعه اینها خصوص میاده هر وقت ما تنوع مذهب خصوص در روایت که اصلا متاسفانه اون چی که در اینجا این اگه ما این دوتا رو از همه بهتر بدونیم این تا، یکی نحجل بلاغه یکی عمالی صدوق این یکی از همه بهتر رو شد و درش این تا رو بدونیم اجمالش بد نیست لیکن مشکل اینه که در محن نحجل بلاغه المنظم تل کاهل صاحب... داریم توی محن صدوق نداریم ما الانه از کردیم تو یعوی شикون خویم جمع جروف بحث ما دنبال دستبندی هستیم الان بحث دست ما دستبندی در کلیاته آیا روایات مطلقه در لعم و رساد ایاکم و علم نجوب داریم یا نه؟ تو متن صاحبه نه و بلقه آمده و ایاکم و تعلوم علم نجوب منجم و کل که که و که کهید و که که که که کهرد اینم آمده اما متاسفانه این در متن مبانی صدوق نمیاد. حالا اگه بخوید نتیجه نهایی بگیریم انصافش خصول و به این متون بسیار بسیار مشكله. اون نتیجه نهایی بعد از اینکه حالا اگه کسی هم اومد گفت آجان وقتی خبر حجت نیست، 20 تا خبر غیر حجت بگید که علاوه هم بذارید، هیچ فایده‌ای نداره. خب 0 به اضافه صفر به اضافه 0، عاقبتاً هم صفر. شما همه اخبار ضعیفه رو علاوه هم, هم بذارید، آخرش سرب بعضی از اجازه، بعضی از موسونش که به نظر من جالبیه به نظر من. این موسون سرسفید و سرصفید سوار و دینخان و مرغان و ممنونم چی چی شد آموزه این که به نظر من میاد که سوم سربخوارانو بیل جالی کردن. این که به نظر من جالی. این تو زمانه آخری که نظر من جلی. اما اجمالاً احتمال قابلی داره انصافش احتمال بسیار قابلی شده موسوی تیلابشه نشاید این این صفحه نیست. که اجمالا این قصه قبل از نهروان واقع شده یعنی منجه می آمده به حضرت خبر داده که طبق نجوم این جنگ نفع شما نیست فساده در جنگ هایی که شد کمترین تلفات مالن جنگ این جنگ نهروان. چون اینطور در کتاب سفین من صابقاً در من اصولاً افکر کتاب سفین من جایی با مراجعه به سفین میشه اصلاً سفین نیمونم خیلی حالا بد میشه خیلی واقعا. یک نارکه شدیدی به خاطر این کارهای زشتی که احل خوبه با امیر مومی کردن لیکن اجمالش اینطور نسبت داده شده که در جنگ جمل حدود 25 نفر کشته شده و در جنگ سکرین حدود 75 نفر سرکت نمی کنم این ارغام درست باشه علایه حاله لشکر اخ... این دوتا جنگ لشکر از, از نو هزار تا ده هزار بخته شده و در خبر دارم اون خیلی یعنی جنب از زمان جاندم بیهاری بودن به هر حال حضرت رشید بردن هنوز خبر دادن که اینا که 9 تا ازشون و ازشون 9 هم کشته میشه همین دوران بود یعنی مجموع اشهدای جنگ فرغسامی 9 تا 10 تا اما خوارش تقریبا همشون از بین رفته از این 9000 نفر یا ده هزار نفر حدود 9 نفر فرغسامی کرد ابن اوجانی اونجا چک بفرار این سلاطین خبیث که از وقت‌ها برای خطل معاویه و امر آس اینا از جنگ نهروان جان سالم بدر بردن یکی از ابن مرجم ابن مرجم از تسالی بگیر از جنگ نهروان جان سالم بدر لذا انصافم توی یه سه جنگ داخلی که امیرون مونی انجام بزن جنگ نهروان کمترین تلفات رو باره از سر می داشته بیشترین نه تا ده و بیشترین تلفات رو باره لشکر مقابل داشته این لشکر مقابل از نه د داشته؟ جور اینا رو کردن که از به بردن الا نه نفر که نتونستن حمله حلقه محاصره به شمده ترار بکنن نه ده نفر مثلا. لذا اجمالا در این که منجمی صحبتی کرده و حضرت گوش بردن و جنگم به حضرت ظاهر و واقع به نفرمی رو میتنمون شد در این بحث نیست اما این خصوصیات در این خصوصیات که نظرم جلی باشه بقیه نجوم. المناجب اینا را الان با این روال اثبات خیلی مشكله اصل مخالفت حداسن قابل اصل مخالفت بله اما این دلالت که علم درست یا باطله و چه مقدارش هست این اصلش نیست در این که اجمالاً هم در روایات اهل بیت و در طریقه اهل بیت و در طریقه اسلامی ها و در طرق انبیاء الهی کلن این اختلاف به اسلام نداره دعا است که بر عوامل طبیعی مقدم میشین هم جای بحث نیست این علم نجوم اگر درست باشه یک کاشف واقعی میگه شواهد طبیعی اینطور طور میکنه مثل که مثلا بگه شما الان عرض جفتی این قدر امکانات رو این قدر مثلا دشمن این قدر تانگ داره شما مثلا نداریم دشمن مثلا فلان داره طبق این قواعد این طور میشه اما یک میروی قیدی بیاد زده خالت بکنه این رو خب نمیگه. این که همیرو رو معاملین سوام داره شما نقطه شما لا شرقیون لا غربیون نه ناشه اصل خود اصلا آلم وجود رو میچرخه می این طور نیست که تو با بخوایی با علم نجوم ما شبایی اینوز بگیم توضیح عرض ارز میکنن یک ای داره که باید عرض میکنن ما حاکم بر وجودی نه اینکه این نجوم بر ما حاکم باشه ناشعت و قصد اشاره به این باشه این ربطی به نجوم و ایاکم و تعلیم علم النجوم و و منجم و قافران از این ندارم این قضا قضایه نداره به این عباده می که محل کلامه نداره و لذا انصاف نزدیه با این که ما خیلی وقتی شما رو گرفتیم در این به حساب دروس از این روایت رو خوندید اثبات این مطلب به این مقدار از روایات فعلا مشکل فعلا در دوال اطلاقات هستید اثبات اطلاقات و روایات خیلی مشکل. حدیث بعدی در باب 14 از ابواب آداب سفر در وسائل الشیعه این جدی که من دارم جلد 8 صفحه 270 شماره 9 و فی معان الاخبار، آن علی بن احمد بن محمد بن امیران الدعاق، آن حمزه بن القاسم العلوي، آن جعفر بن محمد بن مالک، آن محمد بن الحسين بن زید الزیاد، آن محمد بن الزیاد الزدی، آن المفخضل بن اومر، آن صادق عليه السلام. فی حدیثن فی قول الله تعالى و ذبحة الله ابراهيم رب هو به كلمات، إلى انقال و عمل كلمات. فمنها ما ذکرنا من فکر میکنم نشون مراجعه کنم حتما کتابش از معانی پیشتون باشه عادی که کامپیوترن به نظرم این الهام قال که ایشا مراجعه الحدیث نوکری اصلا این جزء کلام امام نیست این ذی کلام امام نیست از شابه دیده بودم بیشتر خلاص نگاه بکنم چون اصلا این تعابیر و عمل کلمات فمنها ها ذکرنا این به روایت نمی امام و منها المعرفت و به قدم باری و توحیدیهی و تنزیحی عن تشریح حتی نوره فلیل کواکب و القمر و شمس وستدل به افول کل واحدت منها حدثی حدث حدسی و به حدوسی علا مهدثی ثم اعلمه و عزوجل امنال ان به نجوم خطعان این جزه روایات مطلقه البته این ان تعالی بعد دست میکنیم که آیا قصه ابراهیم و نجوم چی بوده و نظر ایشان در نجوم چی بوده که خود در مسائل قرآنی مطرح شده بعد میاد من یادم میاد یاد سابقاً خیلی سابقی این حدیث نگاه کرده یه مقدار شلام امام در کلام امام بعد کلام راوی خلق شده اصطلاحاً در حدیث میان یعنی حدیث مجرع جمع شده بین کلام امام و راوی این به عمل کلاماتی و اما به لحاظ اسناد حلی ابن احمد ابن محمد ابن امرال دقاغ رو نمیشنسیم. از مشایخ صدوق به این که ازش نقل کرده اما آشنایی باش نداریم حمزه ابن قاسم مرد بزرگواریست توان نسبش تو ذهن نیست دقیقا من جعفر ابن محمد ابن مالک اهل کوفه است حدیث از اینجا کوفه میشه و ایشان ضعیف تضعیف شدید شده من محمد ابن حسین ابن زید زیاد این محمد ابن حسین ابن خطابه این ولی که خب سند قبل داره هم محمد ابن زیاد الازدی عادتا محمد ابن زیاد الازدی همون ابن عبی عمر معروفه زیاد اسم پدرشه ابو عمر اسمش زیاد بوده عادتا اونه من المفضل ابن عمر الان تو ذهنم نیست که ابن عبی عمر از مفضل معروف کنه او دو دوتا خطه کاملا جدایه از هم. فکرم نیست که ایشون از از امکان داره چون ابن علی عمر چون مفضل در امام صادق هم زنده بود البته من کران عرض کردم مفضل در زمان امام صادق چون جزء رؤسای خط و قلوبه به لحاظ نشاط اجتماعی و حرکت اجتماعی خیلی فوق العاده است یک نقش بزرگی در کوفه داشت بعد از امام صادق ظلن شو... شواهد هست نشون میده که شواهد مفضل صدامیکرد که مثلا اختیار می... میکرد که تفهم میکرد تصور میکرد میتونه خلافت رو به امام صادق بیاره اینا اینا قلوب سیاسی داشته در اصل دیگه ظاهر زمان امام جعفر و بعد جریان محمد نرزکی و و شجریان ایشون زمان دیگه مطمئن شد که خبری نیست امکان اینکه اهل بیت به مقام سلطه سیاسی برسن نیست لذا ایشون با اینکه زمان امام جعفر در کتی بوشه خونه بود یه منفذری که یک تیکه حرکت و نشاط و جوش و خروش راه حرکت بود رفت خونه و دیگه بروز و ظهوری نداشت ما از مفضل در زمان امام کاظم هیچ ذی بروزی نداریم. فرز این مقدار آمد در مدینه با حضرت ایمان آورد و برگرد اصلا روایتش هم به زمان زنگونه نداریم. به خدمت امام رسیدن، خدمه اون یه تمام اون بخشاییشون با امام صادره در زمان امام کاظم کاملا دیگه ایشون گوشه نشینه. در هر حال مفضل به نظر ما مشکل نداره اما این روایت مشکلات دیگه داره اصلا مشکل متن هم داره که کلام نباشه. موز رائحه است که شما به عمل کلمات اینها ما ذکر نما، اینها خیلی عجیبه. نمیخوره به کلام راوی بیشتر می‌خوره. خیلی واضحه بسا. و بعد احمد بن حسن القطان از مشایخ سنی ایشانه. ان احمد بن یحیی بن زکریا، ابن بکر بن عبدالله بن حبیب، بعدن عبد و ام حمیم بن بهلول اذهبی، اینا اخاذی هستند که بعدشون اسمشون اصلاً کلا نیامده. تن عبدالله بن طرز این شاید عبد الله بن فضلش خوب باشه این از سادات بنی هاشم که در مدینه بوده فضل بن عبد الله بن فضل هاشمی شاید او باشه از بنی هاشمه هم دور یعنی جت در عبدالمطلب مشترک میشه با اون سلام انا ابي خالد الكابلي این ابي خالد همون که گفتن اسمش چنگره زبان مثلا از سجاد بوده زمان امان واقع میگن در کل زمان امان ساده و نه رو میکنم که مثلا خیلی خواست اصحاب بوده بینا کسان بوده که اول مثلا تشجیع رو تربیش کردن خود من هنوز یه میدار در اصل وجود شهر دارم که این واقعی باشه یا نباشه احتمالا اسم رمزی باشه نه احتمالا مثل همون مثلا جعفر بن محمد بن مالک یکی نگاه کردی؟ بله من خب میگه کتابون بله به نظر رواید نیست این اشتباه کرده من هم سابست اشتباه کرده این نیست یعنی واضحه علاوه خود من تو ابو خالد کابولی یه مقداری شبهه دارم که این رجل شخصیت وهمی باشه اسم یک اسم کنایی باشه واقعی نباشه به هر حال این چون ما بحثشو مفصل کردیم یکی دو تا روایت داریم دیدم اون بحث اراضی الان مطلب زمین و ملکیت زمین ابي خالد خابده انساده به نظر من اگر ابو خالد خابدی وجود خارجی بشه اون قطعا نیست اون ابو خاز قماصه اون ابو خالد خابدی قطعاً نیست ولی ما رو ابو خالد گرفتن و بحثی طولانی کردم در سر در بحث احیاء مواد دیگه شو جاش اینجا نیست اونجا متعرض بشید چون قال سمعت زين العابدین علیه السلام یقول از زنوب ولی که تغییر نم، الباقی رو علی ناز، این دعای کمید داره. اللهم خلیل زنوب ولی تغییر نم. چند تاری وقت داره؟ نه یکی. تو بهار هم داره ابوا به ایمان و کفر خوف یا اخلاق بهاری. چند، چهل، چندشون داره بهاری. یه بابی داره تقصیر و زنوب. یکی چه از زنوب ولی که تغییر نم، از زنوب تهدید و دعا زنوب انت. بعد ایلامقال ور زنوب ولی که تولد مرهوا. هوا رو تیره میکنه از سحر و بلطانه یعنی اصلا فضا رو آلوده میکنه همش با اوهام و خیالات و این یه سحر هم کرد که جادو کرد که چین کردید یه روز اینطور میشه اصلا فضای زندگی آلوده میشه ولی ایمان به نجوم و تکذیب بالقدر این دو تا تو دیگه هم بود اگر یادتون باشه و عقوق والدین سنت ضعف زیاد احتیاج به بررسی ندارد. اما ایا شیفی تفسیری یعنی این یعقوب نشود؟ هم مرساله دیگر تازه با عبدالله عنقوری طالع می‌امنم. اکثر هم الله. به و هم مشکون قال کانو یا بولون یومتر و نوع و کلا یومتر رو بخونی. و نوع و لا یومتر. و منها این لوازم مبارکه آمده ما یا به مشک اشاره رو به هر به منجم هم زده. کانو و یعطون الارفا یعنی به اصطلاح منجمین فیو صدقون هم به ما یه وقت تمام شد این تفسیره هم اگر دیروز یاتون باشه از اون نقلی که از علی المعنی تو کتاب تسکتاتون خواسته بود اونجا هم آمده بود در اون روایت اهل سنت اینجا هم در تفسیر عیاشی آمده که از تو فرده زیده و